فست یک شخصی وازه واشکاره بعضی دفعه از تار این خبر است آیا آگاه کرده مردم از فه و فجور آن شخص غیبت محسوم می یا نه؟ بله اگر کسی خفرش مشخصه یا فستش مشخصه یا پساد مشخصه بناداره داره کنه یا خطرناکه دیگران را آگاه کردن که از دون خود را پرهیز بکنن این غیبت سال نمیشه. حدیث هم دلیلش حدیث داخل سید بخاری هست اچھا <مترح> اومد پیش نبی کری که کہ بیس اقول اشیدہ اوه این اه خیلی بده آدم خیلی بده دوباره نبی خیلی با نرمی کرد و با اخلاق خوب پیش اینجا در حضرت عائشه فهمود این کہ آقا خیلی خرابه تا شر خود را در امام بگذارد.